اخترک ششم اخترکی بود ده بار فراختش و آقا پیرهی تو اون می که کتابای کت و کلوفت می خب اینم یه کاشف از کجا میای؟ این کتاب به این کلوفتی چیه؟ شما اینجا چیکار می کنی؟ من جغرافیدانم جغرافیدان چیه دیگه؟ جغرافیدان به دانشمندی میگن که جای دریاها و رودخانهها و شهرها و کوه و بیابان ها رو می دونه. محشره یک کار درست و حسابیه تو خیلی قشنگه اقیانس هم داره؟ از کجا بدونم؟ که چطور از کجا بدونم؟ شهر رودخونه بیابون از اینام خبری ندارم خشونه جغرافی دانی درسته ولی کاشف که نیستم من حتی یه دونه کاشف هم ندارم کار جغرافیدان این نیست که راه بیفته دوره بره شهره و رودخونه ها و کوه ها و دویه و اقیانوس ها و بیامون ها و بیام رو بشوره مقام جغرافیدان برتر از اونه که دوره بیفته و بگرده اصلا از اتاکارش پا میرون نمیگذاره بلکه رو اونجا میپذیره ازشون شوف میکنه و از خاطراتشون یاد برمیداره بر و اگر خاطرات یکی از اونها به نظرش جالب اومد دستور میده روی خلقیات کاشف مورد نظر تحقیقاتی صورت بگیره برای چی برای اینکه اگه کاشف اهل چخاند کرده باشه کار کتابهای جغرافیا رو به فاجعه بکشونه هرگاه کاشفی که اهل پیاله باشه اون دیگه چرا آه، چون آدم دائم القمر همه چیز رو دوتا میبینن اون وقت جغرافیدان برمیداره جایی که یک کوه بیشتر نیست بیره میسه دو کوه پس من یه بابایی رو میشتستم که کاشف حجبی عذاب در میاد. به نیست بنابراین من از اینکه کاملا ثابت شد پالان کاشف کج نیست تحقیقاتی هم روی کشمی که کرده انجام میگیره یعنی میرن میبینم کار گرفتاری زیاده از خود کاشف میخواد دلیل بیاره. مثلا اگه پای کشف یک کوه بزرگ در میان بود ازش میخوان سنگای گنده ای از اون کوه رو کنه راستی تو داری از راه دور میای. تو کاشفی باید چند چون اخترکت رو برای من بگی اخترک من چیز چند این جالبی نداره آخه خیلی کوچوله. سه تا دیش پشان دارم که دوتاش فعاله یکیش خاموش اما خب دیگه آدم کف دستش که بوی نکرده هلم چه میدونه چی پیش میاد یه گلم دارم نه. ما دیگه گلها رو یادداشت نمیکنیم. چرا؟ گل که سیبا تره برای اینگه گلها فانی هم. فوانی هم کتاب های جغرافیات کتاب های ترن و هیچ وقتم از اعتبار نمی بسیار به ندرت ممکنه یک کوهجا عوض کنه بسیار به ندرت ممکنه آب یک اقیانوس خانی بشه ما فقط چیزهای پایدار رو می نویزیم آتیش بشانه خاموش هم ممکن است نو دیدار بشن اما فانی رو نگفتین یعنی چی؟ آتش چه روشن باشه، چه خاموش، برای ما فرقی نمیکنه. اون چه به حساب بیاد خود کوهه که تغییر پیدا نمی‌کنه. فانی یعنی چی؟ خب مسافر کوچولو تو تمام عمرش وقتی چیزی از کسی میپرسی دیگه دست برداشت نبود یعنی <مم> چیزی که در آینده تهدید به نابودی میشه؟ کله من در آینده تهدید به نابودی میشه؟ آخه چه که می شه؟ گل من فانیه جلو تمام دنیا اون برای دفاع از خودش جز تا خالی چی نداره اون وقت منو بگو که اونا تو اخترکم یکی و تنها ولیش کردن شما من دیدن کجا را تاسه میکنم سیاره زمین شهرت خوبی داره لاجرم زمین سیاره هفتم شد مصابه کچولو پاش که به زمین رسید از اینکه که دیار بشری گیده سخت هاج و تازه تازه داشت از این فکر که شاید سیاره رو عوضی گرفته ترسش بر می داشت که چندره محتابی رنگی رو ماسه ها جا, جا شد یک مار کدوم رو پایین اومدم؟ رو زمین تو قاره آفریقا اجا پس رو زمین انسان به هم نمی رسه. اینجا کبیره تو کبیر کسی زندگی نمی کنه. زمین بسیار وسیعه به خودم میگم ستارا واسه این روشنن که هر کی بتونه یه روز مال خودش رو پیدا کنه اختره که من رو نگاه درست بار سرمونه اما چقدر دوره قشنگه اینجا آمدی چه کار؟ با یک گل بگو شده عجب آدم ها کجان؟ تو که بیرادم یه خورده احساس تنهایی میکنه پیش آدم ها محساس تنهایی میکنه تو چه جنوره با مزه هستی؟ به باریکی یه انگشتی؟ درواز از انگشتر پادشایی مختدر ترم نه چهنده پام چه نداریم رام که نمیتونی بری میتونم تو رو به چنان جای دوری ببرم که هیچ کشتی هم نتونه ببرتت هر کس رو کنم به خاکی که ازش در اومده برش میگردونم اما تو پاکی و از ستاره دیگه اومدی تو روی این زمین خارای اونقدر ضعیفی که به حالت رحمم میاد روزی روزگاری اگه دلت خیلی هوای اخترکت رو کرد بیا من کمکت کنم از من بر میار آره حسابی حالیم شد اما راستی تو چرا همه حرفاتو به صورت معما در میاری حلال همه معماهام هم من مسافر کچولو کبیر را از پاشنه در کرد و جز یک گل به هیچی بر نخورد. یک گله سگل برگه یک گله ناچیز سلام سیا آدما ها کجا آدم ها گم کنم ازشون یه شیشفتای باشه شایه ها پیش دیدمه شود منچون خجا میتونه کجا میشه پیداشون کرد باد این ور و اون ور می نه ریشه نجورد این پیری سگیم هستوبی اصباب دردی سر شده خدا. خدافر خدافر مصافر کوچولو از کوه بلندی بالا رفت تنها کوههایی که به اونش دیده بود ستا آتش بیشانای اخترک خودش بود که تا سر زانوش می رسیدند و از اون یکی که خاموش بود جای چار استفاده ازدفاده می کرد. این بود که به خودش گفت از سر یک کوه به این بلندی به یک نظر میتونم همه سیاره و همه آدم‌ها رو ببینم اما جز نوک تیز صخره‌های نوک تیز چیزی ندید. سلام سلام سلام سلام, سلام. کیسی شما چه شما, کیسی شما؟ با من دوست بشیم. بشیم. بومنده، سیاره عجیبی، خشک خشک و تیز تیز و شور شور. اینم آدماش، که زری قوی تخیل ندارن، هر چی به تکرار میکنن. تو خاطره که گلی داشتم که همیشه اول اون حرف میزد اما سرانجام بعد از مدت ها راه رفتن از میان ریک ها و صخره ها و برکا مسافر کوچولو به جاده ای برخورد و هر جاده ای هم یک راست میره سراغ آدم ها سلام اینجا گلستان بود سلام سلام مادم. سلام شماها کی هستی گلسر گلستان هستی مسافر کوچولو سخت احساس بدبختی گلش بهش گفته بود از نوع او تو تمام عالم فقط همون یکیه و حالا پنج هزار تا گل همه مثل هم اونم فقط تو یک گل تو. اگه گل من اینا رو می دید بعد جوری از رو میرفت پشت سر هم برنامی که سرفه کردن و برانکس از خور فرار کنه خودشو رو به مردن میزد و منم مجبور میشدم پای بود کنم به پرستاریش بگرنه برای سرشکست کردن منم شده راستی راستی میمارد منو باش که فقط با یه گل خودم و دولتمند عالم خیال میکردم در صورتی که اون چی دارم فقط یه گل معمولیه با اون گل و اون تا آتش بشان که تا سر زانو من و شایدم یکیشون تو عبد خاموش بمونه امیر چندان پا شرکتی به حساب نمیام اون وقت بود که سروکنده ی روباه پیدا شد سلام سلام من اینجا، زیر درخت سیب که هستی تو قجب خوشگیلی من یه روباه بیا با من بازی کن خدا میدونه چقدر دلم گرفته نمیتونم باد بازی کنم آخه هنوز احلیم نکردم منذرت میخوام اهلی کردن یعنی چی؟ تو اهل اینجا نیستی. به چی میگردی؟ پی آدم‌ها میگردم. اهل کردن یعنی چی؟ آدم‌ها تفنگ دارن و شکار میکنند. اینش اسباب دلخوریه. مرغ و ماکیون هم پرورش میدن، خیرشون فقط همینه. تو به مرغ میگردی؟ نه. پی دوست میگردم. اهلی کردن یعنی چی؟ م... یه چیزیه که پاک فراموش شده. معنیش ایجاد علاقه کردنه. ایجاد علاقه کرده. آره تو الان واسه من یه پسر بچهی مثل صد هزار تا پسر بچهی دیگه نه منی چه اتیاجی به تو دارم نه تویی چه اتیاجی به من منم برای تو یه روباهم مثل صد هزار تا روباه دیگه آه، اما اگه برداشتی من اهلی کردی اون وقت هر تامون به هم احتیاج پیدا میکنیم میونه همه عالم تو و برای من موجود ای میشی من برای تو کم کم داره دستگیرم میشه یه هست گمونم من اهلی کرده باشه بعید نیست روی این کره زمین هزار جور چیز میشه دید آم نه اون رو زمین نیست روی سیاره دیگه است اره. تو سیاره شکارچی هم هست نه محشره مرگ ماکون چطور نه همیشه خدای پای وسط لنگ زندگی یه نباختی دارم من مرگا رو شکار میکنم آدم هم منو همه مرگا اینه همه همه آدم هم اینا. اینه که یخورد خلقمو تنگ میکنه اما اگه تو برداری منو اهلی کنی انگار که زندگیم و چراغون کرده باشی اون وقت صدای پای رو میشناسم که با هر صدای پایی فرق میکنه صدای پای دیگرون منو وادار میکنه تو هفت تا سراخ قایم بشه. اما صدای پای تو عین موسیقی من از سراخم میکشه بیرون تازه نگاه کن اونجا اون گندمزارو میبینی برا من که نوم بخور گندم چیز بیفایدهایه پس گندم زارم منو به یاد چیزی نمیندازه اسباب تأصفه اما تو مواد رنگ تلاست پس وقتی احلیم کردی محشر میشه گندم که تلایی رنگه منو به یاد تو میندازه صدای بادم که تو گندم زار میپیشه دوست خواهم داشت اگه دوست دلت میخواد منو احلیم دلم میخواد اما وقت چند ندارم باید برم دوستانی پیدا کنم و از کلی چیزا در بیارم آدم فقط از چیزایی که اهلی کنه میتونه سر در بیاره انسونا دیگه برای سر در آوردن از چیزا وقت ندارن همه چیزا همینجور حاضر آماده از دکنه میخورن اما چون دکونی نیست که دوست معامله کنه آدما موندن بی دوست تو اگه دوست میخوای خب من احلی جایش چی؟ باید خیلی خیلی صبور باشی اولش یه خورده دورتر از من میگیری اینجوری میونه علف میشینی من زیر چشمی نگاه میکنم و تو لام تاکام هیچی نمیگی چون تقصیر همه سوی سوی تفاومان زیر سر زبونه عوضش هر روز میتونی یه خورده نزدیکتر بچی پردای اون روز دوباره مسافر کوچولو آمد پیش روبا کاش سر همون ساعت دیروز اومده بودی اگه مثلا سر ساعت چهار بعد از ظهر بیای من از ساعت سه قهم تو دلم آب میشه و هرچی هم ساعت جلوتر بره بیشتر احساس شادی و خوشبختی میکنم ساعت چهار که شد دلم بناه میکنه شور زدن و نگران شدن اون وقتی که قدر خوشبختی رو میفهمم اما اگه تو وقت روی وقت بیای من از کجا بدونم چه ساعتی باید دلما برای دیدارت آماده کنم؟ هر چیزی برای خودش رسم و رسومی داره. رسم و رسوم یعنی چی؟ این هم یعنی اینم از اون چیزاییه که پاچ از خاطر ها رفته. این همون چیزیه که باعث میشه فلان روز با باقی روزها و فلان ساعت با باقی ساعتا فرق کنه. مثلا های ما میونه خودشون رسمی دارن و اون اینه که پنجشنبه ها رو با دخترای ده میرن رقص. پس پنجشنبه ها منه برای خودم گردش تا دم موستون میرم حالا اگه شکارتی وقت و بیوقت میرفتن رقص همه روزا شبیه هم میشد و من بیشاره دیگه فرصت و فراغتی نداشتم به این ترتیب مسافر کوچولو روباه و اهلی کرد و موقعی که لحظه جدایی نزدیک شد نمیتونم نمی‌تونم عشقی ما بگیرم تقصیر خودته من که بگی تو نمیخواستم خودت خواستی احلیت کنم همینطور اخه عشقت داره سرازیر میشه همینطور پس این ماجوره به حالتو فایدهای نداشت چرا؟ برای خاطر رنگ گندم. برو برو یه بار دیگه گولا رو ببین تا بفهمی که گل خودت تو عالم تکه بریشتان رو با هم ودا میکنیم و من بروان هدیه رازی رو بزمیجم مساپر کوچولو بار دیگه به تماشای گل هارم شما ها سر سوزنی به گل من میریمونیم و هنوز هیچی نیستین. نه کسی شما رو اهلی کرده نه شما کسی رو درست همون جویه که روباه من بود روباهی بود مثل صد هزار تا روباه دیگه اون دوست خودم کردم و حالا تو همه عالم تکه شما خوشگلیم اما خالی هستیم براتون نمیشه مرد گفتگو نداره که گل من منم فران رفت گذر گلی میبینه مثل شما اما اون به تنهایی به همه شما سره چون فقط اونه که آبش دادم چون فقط اونه که زیر حبابش گذاشتم چون فقط اونه که با تجیر براش حفاظ درست کردم چون فقط اونه که جونه براشو کشتم جز و سی که شب پره بشن چون فقط اونه که پای گل گذاری خود نمایا یا حتی گای پای بخ کردن و هیچی نگفتناش نشدتم چون که اون گل منه و برگشت پیش روبا خدا نگهدار خدا نگهدار اما رازی که گفتم خیلی سادست جز با دل کی رو اونجور که باید نمیشه دیم. نهاد و گوهر رو چشم سر نمیبینه نهاد گوهر رو چشم سر نمی‌بینه. ارزش گل تو عمریه که به پاش صرف کردی عمریه که پاش زرف کرد. انسان های فراموش کردن اما تو نباید فراموش کنی تو تا زندگی نسبت به اونی که اهلی کردی مسئولی تو مسئول گلتی من مسئول گلمم سلام تو چیکا میکنی اینجا؟ من مسافرها رو به دسته های هزارتایی تقسیم میکنم و قطارها رو لازم باشه به راست میفرستم لازم باشه به چپ اجام اجاله ای دارم توی چی میرم؟ از خود آتشکال لکومتیم بپرسیم نمیدونم چی چی نشده برگهت نگده؟ اینا اولیانیستن اونا رفتن اینا برمیگردن چه که بودن خوش نداشتن؟ آدمیزاد هیچ وقت جایی رو کست خوش کست ای این ها چی رو دنبال نمی اون تو یا خوابشون میبره یا میفتن به دهندره فقط بچه های که دماغشون رو به شیشها فشار میدن فقط بچه که میدونم تیبشی میگردن بچه چون که کلی بخت سفیه که پارچه ای کنن و عروسک براشون اونقدر اهمیت ده همی که اگه یکی ازشون کشف بره میسنن سور بخت یار بچه هاست هم. این بابا تاجر قرص‌های تکمیل شده ای بود که رفع تشنگی می‌کنه. کنه یک یه قرص میرم بالا و دیگه تشنگی بی تشنگی این رو باعث کلی وقته کارشناس های خبره نشستن دقیقا حساب کردن درست هفته ی سه دقیقه وقت سرفجوی می میشه. خب اون وقت پنجا و سه دقیقه رو چکا هر چی دلشون خواست من اگه پنج سه دقیقه وقت اضافی داشته باشم خوش خوشک میرم به طرف یه چشمه روز هشتم خرابی هواپیمان بود که من داشتم آخرین چکه های موجودی آبامو میخوردم و اون قضیه تاجر رو برام تعریف می‌کرد. گفتم آره خاطرات تو راستی راستی جالبن اما من هنوز از پس تعمیر هواپیما بر نیومدم آبم ته کشیده منم اگه میتونستم خوشخوشک به طرف چشمه ای برم بیگفتگو همون سعادتی رو احساس میکردم که میگی دوستم روبا آقا کوچولو دور روبا رو قلم برای چی؟ برای اینکه تشنگی نزدیک کارمونو بسازه برای این یه دوست عالیه. حتی اگه آدم در مرد باشه من که از داشتن یه دوست با خیلی خوشحالم خب منم چشنمه بگردیم یه چا پیدا کنیم اینجوری تو کویر برهود رو هوا پی چا گشتن احبه است هست گفتی تو تشنته ها؟ آب ممکنه برای دل منم خوب باشه خسته شده بود گرفت نشست من هم کنارش نشستم قشنگی ستاره ها برای خاطر گلیه که ما نمی بینیمش همینجوره و بدون حرف در محتاب غرق تماشای چین و شکنهای شن شدن کبیر قشنگه و حق با او بود من همیشه عاشق کبیر بودم آدم بالای تودهی شن لرزو می هیچی نمیبینه و هیچی نمیشنوه اما با وجود این چیزی تو سکوت برق بر, بر میزنه. چیزی که کبی رو زیبا می کنه اینه که یه چایی چه قیم کرده چون مصافر کوچولو داشت خوابش می برد بغلش کردم و راه افتادم دست و دلم می لرزید. انگار چیز شکستنی بسیار گرامبه رو روی دست می بردم حتی به نظرم می اومد که در تمام عالم چیزی شکستن تر از اون به هم نمیرسید. تو روشنی مهتا به اون پیشانی رنگ پریده اون چشمای بسته و اون طره های مو که باد می نگاه می‌کردم و تو دلم میگفتم اونچه اون چه می بینم، یه صورت ظاهر بیشتر نیست چیزیش رو که ما به چشم نمی شو. دهن نیمه بازش تره کمرنگ نیمه لبخندی رو داشت به خودم گفتم تو این مسافر کوچولویی که خوابیده اون که منو به این شدت متاثر میکنه و پاداریش نسبت به یک گلی. این تصویر گل سرخیه که مثل شعله چراقی حتی تو خواب نازم که هست تو وجودش میدرخشه و اون وقت اونو بازم شکننده تر دیدم باید خیلی مبازه به چراغا باشیم. یه وزش بادم ممکنه خاموششون کنه. و همونطور در حال راه رفتن بود که دمدمه سهر چاه رو پیدا کردم. چاهی که بش رسیده بودم اصلا به چاهای کبیری نمیمونست. چاه کبیری یه چاله ساده است وسط شنها. این یکی به چاه های واهی میمونست. اما اون دور بر واهی نبود. فکردم که دارم خواب میبینم عجیبه گرگره و صد و تناب همه چی رو به راهه میشنوی؟ ما داریم این چوارم خواب بیدور میکنیم اون داره برامون آواز میخونه بدش من برای تو زیادی سنگینه آواز قرقره رو طور تو گوشم داشتم و تو آب که هنوز می لرزید لرزش خورشید رو دیدم بده من من کشنی این آبم و من تازه تونستم بفهمم فهمم چی می گشتی سطل تا طالباش بالا بردم با چشمای بسته نوشید آبی بود به شیرینی عیدی آبی به کلی سوای هر خوردنی دیگه زایده راه رفتن زیر ستاره ها بود و سرود قرقره و تقلای بازوهای من مثل یه چشروشنی به حال دل خوب بود پسر بچه که چراغ چراغ درخت عید و موسیبی نیمی شبش و لطف لبخنده ها به همین شکل ایدی رو که به میدادن، اون همه جلوه می بخشی. مردم سیاری تو بر درن پنج هزار تو گلو توی گلسون می و اون یه دونه رو که پیش می گردن میون پیدا نمی کنن. پیداش نمی کنن. آره با وجود این چیزی که پیش می گردن ممکنه فقط توی گل یا توی جوره آب پیدا بشه گفتگو نداره گیرم چشم سر کوره باید با چشم دل پیش گشت هی رو گولت وایسی ها کدوم قول؟ یادته یه پوزه بند برا برم آخه من مسئول گلمم تو خیالاتی به داری که من ازشون بیخبرم میدونی؟ فردا سال زمین اومدن منه همین نزدیک ها پایین آه پس هشت روز پیش اون روز صبح که تو تک و تنها هزار میل دورتر از هر آبادی وسط کویر میگشتی و به من برخوردی تو نبود داشتی برمیگشتی به همون جایی که پایین اومدی شایدم با خاطر همین سالگرد گرد راستشی خورده ترسم برداشته دیگه تو باید بری به کارت برسی باید داری سراغ ماشینه من همینجا منتظرت میشم فردا از برگر منتها من خاطر جمع نبودم به یاد روبا افتادم اگر آدم گذاشت اهلیش کنن به فهمی خودش رو به این خطر انداخته که کارش به گریه کردن بکشی کنار کاه دیوار سنگی مخروبه ای بود فردا از که از سر کار برگشتم از دور دیدم اون بالا نشسته پاهاشو آویزون کرده شنیدم که میگه پس نمیاد. درستی نقطه نبودو چرا چرا روزش که درست همین امروزه گیرم محلش اینجایی آره معلومه خودت میتونی ببینی جزبه پامروشن از کجا شروع میشه همونجا منتظرم باش تاریک شد میام زهریت خوب هست؟ مطمئنه در دو زهرش زیاد کش نمیده؟ خب کالا دیگه برو یه برو میخوام بیام پایین اون وقت من نگاهم به پایین به پای دیوار افتاد و از جا چستم یکی از اون مارای زردی که تو یه چشم هم زدن کبک آدمو میکنه به طرف مسافر کچولو قد راست کردم من همون جور که جیبم و دنبال تپونچه میگشتم خیز برداشتم اما مار از سر صدای من مثل پبوارهی که به روی شن آروم جاری شد و بیون که چندون عجلهی از خودش نشون بده با صدای خفیف پلزی لای سنگ ها خلید. درست به موقع رسیدم پای دیوار و تپلکی مسابق کچولو رو که رنگش مثل برف پریده بود تو هوا گرفتم این دیگه چه یه حالا دیگه با مارا حرف میزنی؟ از اینکه کم کتر لواه ماشین تو پیدا کردی خوشحالم حالا, حالا میتونی برگردی خونه تو از کجا فهمیدی آخه منم امروز بر میگردم خونه گیرم راه من خیلی دورتره خیلی سختره حس میکردم داره اتفاق فوق العاده ای میافته گرفتمش تو بغلم عین یه بچه کوچولو. با وجود این به نظرم می اومد که اون داره به گردابی فرو می رو و برای نگه داشتنش هیچ کاری از من بر نمیاد نگاه متینش به دور دست های دور راه کشیده بود برای تو دارم اون جبرم است بره دارم پوزه بندرم دارم و با دل گرفته لبخم مدت درازی صبر کردم حس کردم کم کمک تنش دوباره داره گرم میشه آقا کوچولوی من وحشت کردی امشب وحشتی خیلی بیشتری چشم به راهه کوچولوی من دلم میخواد پازم قشقش خنده رو امشب درست میشه یک سال و اخره کم درست پلی همون نقطه ای میرسه که پارسال به زمین اومدم کوچولو این از یه ما رو میاد و ستاره ی خواب آشفته بیشتر نیست مگه نه چیزی که مهمه با چشم سر دیده نمیشه همینجوره در مورد گلم همینطوره اگه گلی رو دوست داشته باشی که توی ستاره دیگه شب تماشای آسمون چه لذتی پیدا میکنه هم میزه تو رو غرق گل همین همینجوره در مورد آبم هم همینطوره و که تو به من دودی به خاطر قرقه را و ریزمون درست به یه موسیقی میمونست یادت که هست چه خوب بود شب به شب را نگاه میکنی بخطره که من کوچولوتر از اونه که بتونم جاشبت نشون بدم اما چه بهتر اونم برای تو میشه یکی از ستارها. و اون وقت تو دوست داری همه ستارا رو تماشا کنی همهشون دوستای دوستایی تو میشن روزی میخوان یه هدیه بهت بدم واخت کچولوه کچولوه که من مرده شنیده میخندم هدیهی منم داره تم همینه. درست مثل قصیه آب. من که من توی که هست تو من اینکه توی یکی رو میخندم خب پس هر شب که با آسمون نگاه کنی برات مثل اینه که همه مثل تا هم پس میخندم از تو سه که بلدم بخندن و خاطرت که پیدا کرد از روشنایی با من خوشحال میشی. دوست همیشه من باقی میمونی و دلت میخواد با من بخندی پره وقت وقتا هم همین جوری برای تفریح پنجره اتاقتو وا میکنی و دوستت ب... از اینکه که میبینن تو باسمون نگاه میکنی و میخندی حسابه تعجب میکنن اون وقت تو بهشون میگی آره ستارو همیشه منو به خنده میدن <تصفيق> وقت اونا یقینیشون میشه که تو پاک عقلتا از دست داری جان میدینی چه کلکی به دستت داری میدینی میدونی نه. این شب نمیخواد تو بیایی اونجا نه من تنها نمیذارم ظاهر آدمی رو پیدا میکنم که داری درد میکشی. یه خوردم مثل آدمی میشم که داره چون میکنه روهم رفته اینجوری است نه یا که اینو نبینی چه زحمتی بی نه من نمیذارم اینو بیشتر از بابت مهره میگم که نکنه یه تورم بگزه ما رو خیلی خبیزه حتی بازه خنده ممکن ممکنه ادمو نیش بزنم نمیذارم نمیزنم گرچه باره دوبام که بخوام بگم بگذن زهر ندارم وقتی خودمو بشیسوندم با قیافه مسمم و قدم های محکم جلو میرمد همینقدر گفت آه, اه اینجایی اشتباه کردی رنج میبری گرچه حقیقتی نیست اما صاحبه یه مرده رو پیدا میکنم تو خودت رو درک میکنی راه خیلی دوره نمیتونم این جسم رو با خودم ببرم خیلی سنگینه گیرام این پوست کهانهی میشه که دور انداخته باشنش پوست کهانهی که قصی نداره ها خیلی بامزه میشه نه منم به ستران نگاه میکنم همشون به صورتی چوهایی درمیان با قرق رای زنگ زده همه ستارا آب میدن بخورم خیلی با میشه نه تو صاحب هزار کروز زنگوله میشی من صاحب هزار کروز فواره همینجور بزر چند قدم خودم تنهایی برم میدونی گلم رو میگم بخی من مسئولشم توسی قدم لطیفه چقدم رو راست بیشی لپیلی برای اینکه که جلی همین از خودش دفاع کنه همه چی داره مگه چهار خوره پر برم همینو بس منم گرفتم نشستم دیگه نمیتونستم سر پا بند بازم کمی دو دلی نشون داد اما بالاخره پا شد و بدمی به جلو رفت من اصلا قادر به حرکت نبودم کنار خوزک پاش جرک زردی جستو فقط همین یه دن بی حرکت موند، پریادی هم نزد مثل درختی که بیفته آروم آروم زمین افتاد که با وجود شن از افتادنش هم صدایی بلند نشد. سال گذشته با من هنوز در باب این قضیه جایی لبتر نکرد. نکردم دوستان از اینکه منو دوباره زنده دیدن سخت شاد شدند من غم زده بودم اما به اونا میگفتم از خستگی حالا کمی تسلای خاطر پیدا کردم یعنی نه اما اینو خوب میدونم که او به اثرکش برداشت چون آب تاپ که ز پیکرشو پیدا نکرد پکریم نبود که چندون وزنی داشته باشه و حالا شبا دوست دارم به ستاره ها گوش بدم عین هزار کرور زنگ دن. اما موضوع خیلی مهمی که هست من پاک یادم رفت به پوزه بندی که براش کشیدم تسمه اضافه کنم اون ممکن نیست بتونه اونو به پوزه برجه ببنده اینه که از خودم میپرسم یعنی تو اخترکش چه اتفاقه افتاده نکنه برد گلو چریده باشه گاه به خودم میگم حتما نه اون هر شب گلشو زیر حباب میذاره و هوای برشم داره اون وقتی که خیالم راحت میشه و ستاره همه به شیری میخیده گاه به خودم میگم همین کافیه که آدم یه بار حواسش نباشه اومدیم و یه شب حباب یادش رفت یا بره شب نسب شبیه بی سرسده از جعب زد بیرون و اون وقتی که زنگوله ها همه تبدیل به عشق میشن یه راز خیلی خیلی بزرگ اینجا هست برای شما که اونو دوست دارین مثل من هیچ چیز عالم مهمتر از دونستن این نیست که تو فلون نقطه ای که نمیدونیم فلون بردهی که نمیشناسیم گل سرخی رو چریده یا نچریده خوب آسمون رو نگاه کنین و بپرسین برده گل رو یا نه و اون وقت با چشمای خودتون تفاوتشو ببینین و هادی که آدم بزرگاه روحشون خبردار بشه که این موضوع چقدر مهمه اگر براتون پا داد و روزی تو آفریقا گذارتون به کبد صحرا افتاد اگه بچه ای به طرفتون اومد اگه خمدید اگه مهاش تلایی بود اگه وقتی ازش سؤالی کردین جوابی ندار لابد حفظ میدنیم که در اون صورت لطف کنید و نذارید من اینجور خاطر بمونم فوری بردارید به من بنویسید که او برداشت